و الحمد لله رب العالمين آمین الله سلالله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین و معصومین و لحظت دارمت و علی اردائه مجمعین اللهم رفع ناجمی و مشایرین و الحمده برحمت که یا ارحمد رحمین ارسو دراجه به کتاب سکونی و خود سکونی بله متعرض عده از کلمات شدیم توضیح هم از ترین انصافا از بعد از قرن 11 با اینکه که اصلی ما در رجال زیاد نبود از اصحاب ما بحث های بسیار زیادی رو در رجال اضافه کردند و نکته یک نکته هم حالا اینجا از اینجا از بعد از نکاش شد از یک بحثی های لطفیتر این بحث رو توضیح دادیم که طبیعت علم رجال قابل توسعه بود مثلا فرض کن آیه خویی عده از افرادو اسم برده که در رجال قبلی نبوده من با مثال میگم ممکنه شما با عده ای که در رجال ایشون هم نبوده ممکنه با بعد شما کسانی بیان اسم بردن که در این یک نکته نکته دیگه اینه که آیا فهرست هم همینطوره اصل فهرست نجاشی آیا فهرست هم قابل توسع است؟ مثلا شما یکی فهرستی مثل فرست مرموم نجاشی بمیدیسیم که مثلا توسعه باشه و باز برداشو. من در این باید سابقا توضیح دادم، حالا انشاءالله در ادوار شاید در خلال همین بحثایی مثل هم توضیح بیشتری بیاد حضر کردیم اصولا فهارس اصحاب ما مقدرش دو تاست یکی اجازاته یکی فهارسه این خوب دقیق بکنیم این نقطه ردیفی مراد ما از اجازات حالا بین این دو سا هم هست این ایک بحثی داره که الان نمخواهم وارد بشن و که مثل اقوال آن اصل موضوعی اجمال هم اجازات چیزی نوشتاد که شخص می نویسه به یک مخاطب معینی و به او اجازه میده که کتابهای رو با از اون اقل این یه اسمشون داریم اجازه یعنی مخاطب معین فهارس رو همین کار میکنه نوشتاریست که طور خودش رو به کتب نوشته این مخاطب معین نیست اگر مخاطب معین بود اجازه میشه مثلا یا شما ازیدی من کتاب کافی میبنیم و اجازتا در کمتر به کتاب کافی از بنده از استادم فلا فلا تا مرموم کلگی اگر مخاطب معین بود اسمش رو داریم اجازه اگر مخاطب معین نبود مثل فهرس نجاشی مثل فهرس نیست. این اسمشو بذاریم ای فهرست هر دو یک چیزن یعنی هر دو بیان تروح هستن به کتب و معلفات مثلا اصحاب یا غیر ها. و لابچن نحوه تعبیرشون فرم میکنن مثلا ما الان در کتاب نجاشی یه مقداری از این کتاب متنابه رو در اجازات خود در این تروحی داره از محروم شیخ مفید نرم میکنه اینگه حدیث را اخبرما از شیخ ابو عبدالله ما با مراجعه به شواهد تاریخی مراجعه با... به معلف برای شیخ مفید خیهرست ندیدیم لذا به ذهن ما آمده که اون که پرمومه نجرشی از شیخ مفید نهارم میکنه اجازاته این راجعه به شیخ مفید اما مثلا گاهی اوقات از شیخ مفید از ابن قولوی نهارم به سابقه کنید ببینیم قوله جزء جزو هم کتاب فهرسته. ایشون فهرست داره یا از شیخ مفید از شیخ صدوق نرمه میکنه شیخ صدوق هم فهرست داره لذا احتمال داره که مثلا این در اصلش اجازه شیخ صدوق بوده چون سابقا ارز کردم یکی از تعلیفاتی که می میکرم مثلا صد کتاب اداره نوشته، فقری نوشته، مثلا امادی نوشته، یعنی امال رو انشاء کرده، امضا کرده. یا مثلا توحید یا خصال اینا نوشته. غیر از اینکه اینا رو مینویشه، گای اده ایشو نه همشون، یه فهرست می نوشته مثلا یک گیر کتاب مینویشن، من کتاب فلان رو به این طریق دارم، کتاب فلان رو به این طریق، کتاب فلان رو این یه فهرست می مینویشن. وقتی که مردم شیخ صدوق آمده به وقتا و به شیخ مفید اجازه داده به قفت بکنه همه یک کتاب اجازه میداد من این جمعه یعنی کتاب فقیر هم اجازه میداد الاشرایع و خسال و توحید و فهره هم اجازه میداد وقتی مردم شیخ مفید وقتی میخواست برای نجاشی فرض کنی یا شیخ توستی بگه من کتاب مثلا جمیل دراج نه می‌آمد اونی که در فهرست صدوقه میآورد. میگه اخبار را شیخ صدوق و فهرست صدوق یعنی به همون عبارت و طریقی که صدوق داشت. اینم در این, این ترتیب انتقال اجازه. پس بنابر دقت بکنید. اون یعنی فمی رو که ما به نام فهرست میشناسیم مبدایش دو تا یا باید اجازه باشه یا فهرست باشه. توسعه نداره. توسعش محدود. اگر ما بخوایم در زمان خودمون فهرست بنویسیم به من منشاء اصحاب اینجوری بنویسیم. الان مثلا ایده اجازه هم مثلا از آقای مرعشی قدس الله نفسه که ایشون میگه جمیع کتب اصحاب اجازه داریم شما حالا مثلا می‌خواید بگیم علامه حلی در اون کتاب فلان اخبرنی آقای مرعشی به این سب اون صد تا علامه برس. اشکال نداره. چون با اجازه او می‌تونید شما فهرست درست بکنید. مثلا فهرست نجاشی یه نکته خارجی بود. میتوین تدوین فهرست بکنید و اون راهی رو که نجاشی شروع کرده. تو مثلا از ازریه مرحوم هاشم اوزوجه تهران فهرسته. اما اجازه توش نیست، ترف توش نیست. در از ذریعه تروق نداره. در نهایت چیزی در ازدیعه نسخه کتابه. که این کتاب من دو نو سه نسخه این کتاب در فلان جا دیدم تاریخش اینه. اما خود ایشان به دانه دانه کتاب‌ها اجازه شو میشه اگر کسی بخواد در زمان ما شدیه تعلیف کتاب فهرست شیخ نجاشی یا شیخ توصی داشته باشه یه اجازه عام که میگیده این اجازه رو به هر کتاب قرار بده میشه نسی کتاب نجاشی رو بسنی شد الان ما فهارسی که داشته باشیم خیلی نار میاد فهارست ابو غالب زمان من اونس فهارس باشه احتمانه اجازه از که اجازه نیست نیم چیز مختصری داریم که بتونیم از او استفاده بکنیم ولو باید الان اعتماد بکنیم بر اجازات نه اما اگر بنابشه رجال بنویسیم برای اینوزا با هم اگر بنابشه رجال بنویسیم نوشتن رجال احتیاج به اجازات یا فهارست نداره نیازی به اون نذاره رجال رو بر اساس روایات موجود بنویسن تدوین رجال غیر از تدوین فهرسته شما اگر بخوین رجال بنویسید پس کنید همین هم که ارسلان آیه خویی مقداری رو اسم بردن بیش از این کتاب‌های قدیمی چرا ایشون تمام کتاب ارذهر رو به دقت استخراج کردن کتاب‌های قبلی این دقت نکردن حالا شما غیر کتاب ارذهر هم بهش اضافه کنید خب بیشتر میشه، آیه خویی بیشتر شما بیایید یه مقدار از این روایاتی هست در مصادر زیدیها هست اون‌ها هم بهش اضافه کنید خب بیشتر میشست. در مصادر اهل سنت رواشیه هست راوی و هم. اونا اونم بش اضافه کنید خب بیشتر میشه در کتب اهل سنت کسانی که از امام صادق یا امام موسی کاظم نقل غیر از که ما داریم اونها هم اضافه کنیم بیشتر میشه یا از سجاد یا از باقی اونا رو هم اضافه کنید بیشتر میشه لذا اکثر کتاب رجال همیشه از کلام من کتاب رجال نحوه تدوینش متاثر به روایات دقیقاً اما فهارس نحوه تذبینش متأثر به اجازات و فهارس بود وقت مشکل کجا درست میشه که این من دیگه امروزی میتونم شهر مدم اینشاله وقتی دیگه اگر خدای نکرده کسی بخواد از رجال فهره درست بکنه خیلی مشکل میشه خوب دقیق کنیم. کسی بخواد یک سندی رو ببینه این مثال توی سند یک نفر مثلا دومه سند، سه سند،, سند. سند یه که در کتاب ما برون صاحب کتابه. یکی شما بگه من یک اجازه دارم خاصن مشایخ خودم تا به شیخ طوسی، از شیخ طوسی از این سند تو کتاب شیخ طوسی آمده تا این شخص. پس من این رو بیام سند به کتاب این شخص قرار بده. این مشکلی ندارهش بهش. ما بیا این با روایت فهرست رو بکنیم اون تاثیری بیا. ما بیایم با روایت یعنی اون چیزی که در اختیار ما هست روایت تو وسط سند نمیگه دید 100 نفریه که مثلا صاحب کتابه روایت واقعه هم هست تا چون در کتاب کلینی ها بوده. من بیام طریق خودم رو تا شیخ کلینی بیارم اجازه ای که داریم از شیخ کلینی هم تو این طریقی بگیم فلان فلان که صاحب کتابه در عرض کتابو ببین کجاست اونی که من عرگیت حدیث بود کتاب نبود نمیزم روشن شد تصیل مطلب براتون و انشاءالله تعالی توضیح میدم که متاسفانه بعدی از سهار سه اصحاب زشار این مشکل شده هم. این خیلی کار فنی ضریفیه و کار مشکلیه اون قسمت فنی و ظریف کار در اینجا که این در حقیقت سند بوده لذا بنده و تخصیل ارض کردم در بخش روایات تعبیر به سند می‌کنیم، به اسناد. در بخش کتب تعبیر به اجازات می‌کنیم. این تعبیر هنوز خیلی جا افتاده. اما این کار درستیه ما یکی اسانید داریم یکی اجازات داریم این دوتا با هم نباید خلط کنیم اونی که ما به روایت اسانیده اونی که به کتبه اجازاته مثلا الان مشیخه شیخ صدو در کتاب فقی آخرش مشیخه داره این مشیخه شیخ صدوق اصانیده. اجازات نیست. شما درداشت اجازه باشه. شیخ توسی هم مشیخه داره. مشیخه شیخ توسی اجازه اصانید نیست. این دو سا با همدیگه فرواد بگیریم. متاسفانه نسال به مشیخه شیخ صدوق تصور کنیده ایم مثل مشیخه توصیه نه. این دو تا فرق می پس ما یک اصانید داریم روشنی شد یک اجازات داریم. موازا بین این دو تا خرط بشه بودن متاسطفانه اگزهی بودن که گاهی تعبیر این طور میکن کان یورک بوله اصانی در اجازات یا اجازات عدل اصانی یا کان یعلل بوله اصانی اجازات این از اون جهات خیلی ظریف تاریخی که در این یعنی تاریخ تبدیل حدیث و رجال و آسانی و اجازات پی نه، که گالیواد اشتباه میشه. حالا انشاءالله در چون بس معلومه، الان چنین صرفا به نحوه اشاره، و به نقل یک نکته از که که خیلی آسیب داره، که انشاءالله بعد متعرض میشه. شد وقتی اجازه نیست. بله اشکال ندارد. پس اگه بررسی البته بعضی جاهاش اجازه نیست اما معظمش اجازه است برای جاش. بله حالا چون فهرست هم از اون فهرست شیعه طوسی هم میتونه باید بشه. مشکل نداره. زمینه کنه با فهرست شیعه توسی اشکال چون فهرست برنامه اما با اسانید با متصل بکنه مشكله. این اشکال در جایی است که با اسانید بشه. و ما همیشه از کردیم اصولا علمای ما ادیشن مثلا کتاب ام نقطهم اضافه کنن کتاب روایی دارن اما فهرستی نقش ندارن ادهی فهرستی نقش دارن اما در روایات نقش ندارن ادهی هم در هر دو دا نقش دارن مثلا مرو بکلینی در فهارس نقشی نداره معن اسم مرو بکلینی در فهرست شیخ نجاشی خیلی کم پنج وا 6 مورد 5 مورد میبینیم مرو کلی نقش نداره در فهارس اما نقش قوی در روایات ما داره شیخ صدود چرا نفش داره اجازات هم نفش داره توی فهارس مرموم نجاشی عبدالله سور تو فهارس ما خیلی نقش داره اون فیرست نجاشی که ماست اما توی روایات نفش نداره خود نجاشی تکوتو که اگر باید به شجون از نجاشی اما شیخ توسی در هر دو نقش داره مرسموش ایفتوسی هم تو اجازات نخش دار و هم تو روایات نخش داره. در هر در قسمتشون نه. و این اختصاص نداره به این طبقه. طبقه بعدی هم همینطوره. مثلا ابراج نحاشه هم تو فوالس اجازات اسمش هست هم تو روایات اسمش هست. عمده زیاد. هم تو روایات اسمش هست هم تو اجازات اسمش هست. من با مثال میخوام بگم. اما فرض کنیم با مثلا حسین سعید تو روایات خیلی نقش دارم اما تو فهارس اونقدر نقش این از خصائص ما یعنی اهل سنت این بحث رو ندارم خوب دقت کنیم علمای اهل سنت این بحث رو ندارم ما داریم این روشن شنط نقصه اون وقت از زمان علامه من دیروز توضیح شرط کردم علامه که خلاصه نمشه این اصلا دیگه تو فگرست نداره کلش رو داریش کلن شدارشان شد. از زمان علامه به بعد تا زمانی که من الان در خدمتون هستم ذهنیت غالب بلکه میشه که سبا همیش بر برخوزه های علمی ما ذهنیه رجالیه نمیده برخم میکنیم چون مثلا در کتاب آیخوی زیاد میبینیم مثلا فلان و فلان در سند ولی او مطلبه. مثلا چون نجاشی یک کسی رو ببین اسم برده مثلا با این توصیف گوزه صاحب کتاب، پس مطلبن همون است که نجاشی گفته. خب توجه نشده که نجاشی فهرست این روایت این سند سند رو نباید با فهرست بررسی بله شما اگر سند رو با رجال برسی کنید خوبه. یعنی ما این نکته رو توضیح بدی سهارس از روایات گرفته نشده از اسانید گرفته نشده رجال از اسانید گرفته شده اهل سنت هم فقط رجال دارن اونا مع از اسانید گرفتن یعنی ابتدا روایت بوده سند بوده رجاب از اون نوشتن دقیقاً میشه مثلا اینکه از رجالهای قدیم ما ابن عبده است که زیدی ایشون از روایات نوشته این مطلب درسته در میان عامه درسته در میان مسی خاص زیدیان آم درسته اما تو اصحاب ما درست نیست شما یه چیزی داشتیم ما فاهره فاهرس ناظره به روایات نیست خوب دقت کنید این منشأ خیلی از اشتباهاتی که پیدا شده چون مروان نجاشی اجازاتی که داره از سندهای کلینی نگرفه از های تهذیب نگرفته دقت بکنید از سنده ها روزه سعید نگرفته کتب فهارس از اجازاز و فهارس نوشته شده کتب رجال از روایات نوشته شده نمیدارم که این زرافت بحث باشه نشد در رجال ما و کتب رجال زیدی ها و کتب رجال سنی ها اینها از کتب روالات نوشته شده این متاسفانه منشه خرد شده خیال کردم مثلا عباراتی رو که نجاشی در فهرست نوشته اصلا چه یک مقداریشال منشاءش علامه بود چون علامه هم رجالی چون موظن رجوش از نجاشی گرفته من توضیحاتی چند بار عرض کردم نجاشی خودش تخریج میکنه الان دقت نکردن این تصریح نجاشی در اول جزء دوم نجاشیه است چون نجاشی روی یک چاپ شده این نصفه هاش ای نگاه کنیم بخش دوم کتابه خودش تقریبا دو جلدش کرده یشون در اولش میگه در اول جلد دوم میگه این فهرست مصنفات اصحابنا الامامیه و بعض ماغیری فی بعض علم المدن اوزان یعنی اساس کتاب فهرسته به عنوان جمهوری معترضه بحث رجالی هم داره حسین مثلا میگه فلان میگه فلان روان ابی عبد اینا رجالیه ثقاتون و روان او اینا رجالیه لحو کتابون فهرستیه نجاش آمده در حقیقت اون جمعه های معترضه نجاشی رو جدا کرده <تصفيق> نه اون هدف اصلی نجاشی هدف اصلی نجاشی فرسته. در لابلای اسم شخص رو که میبره گاهی هم مباحث رجالی داره همه هم نداره مثلا میباییم یه فلان و فلان لحو کتابون هیچی نقل میکنه باید یه لحو کتابون اما در خیلی از جه ها، در اکثر از جه مثل روان عبی عبدالله، یک نکات رجالی، نکات تاریخی، ترجمه ای، سغتون، مثل عین اینو، یک نکات رجالی هم داره. امدامه آمده این نکات رجالی رو چه کرده؟ روشنشون چرا کرده؟ این منشه ای این تصور شده، الاه حالا که کتاب نجاشی، کتاب رجالیه، نظر زمان علامه در غیر از مشکلات تنویه احدیسوینا یه مشکلی دیگه هم کتاب علامه داره اون مشکلش اینه مشکل کتاب علامه یه مشکل دیگرش این قسمت اون قسمتش اینه که ایشون بحثای رجالی رو جدا کرد و از زمان این بحث رجالی آمد چون بحث رجالی هم سنیام داشتن ما هم مثل سنیام پس رو علامه یه مقدار نوشت بعد یه مقدار اضافه شد از که تریدن اولین کسی که بیشتر اضافه شود مرگم جامع روابط مردم عرده بیگی چون این تریدن سعی که تمام کتب آرمان را استخراج بکنه این اولین بار در حدیث ماست و راوی و مربیان هم او رواهان اولان رواهان کلان این زمان عرده بیگی و طبعاً یکی از کارهایی که شد مخصوصاً از در حوزه اسلام تحقیقات و با رجالی جالی زیادی شد. واقعا مفید بوده منم به خاطر همین ارزش که آشنا بشین با مجموعه ارزش کاری در اون زمان شده که بعد اینشاند از اینجگیری بود حالا حضرت سوالی وقت فهرس تو رجال اصلا تزا می کنم اصلا می این یک تصمیقات داشت فهرسی تو حالا که از سلام شد مقدمه فهرس جوری برمیاد که اینها وقتی که فهرسی می نوشتن و دستت متعرض احوال چون شخص مقدمهش میگه که من کتابار میمیستم هر کسی به اصطلاق تاکی داشته باشه تصلاق خودشون کم داره و چهارهی لابود دارم از این که اوارد لابود دارم لابود دارم از این که اشاره به بساقت و دردش بکنم نه خیلی جا نداریشون رجارت خیلی زیاده خود نجاشه هم کنی نداریش الا ما شاء الله میگم لابود دارم از این که اشاره کنم البته احتمال ما میدیم هنوز خیلی نمیخوام این مطلب رو گوندش بکنیم احتمال میدیم که مرحوم شیخ هم ایده از موارد فهرستش خود ایشون منتفق نشده خط بین اسانید اجازهات شده حالا این شرحی کوچیکه احتمال اینو میدیم مراجع اساتید اجازهات میتونید اسناد رو بدارید الان مثل فهرست نجاشی فقط اگه اجازه شیر بینی میشه فقره اجازه داشت و به اون مقداری که اجازه داره مرشی، مرشی، مرشی، مرشی، مرشی. مثلا ما اجازه اگه داشتیم از آقای مرشی فستم که از فلان فستم به سابکفایی اجازه نداشتیم با مثال ما نمیتونیم کتاب کفاییتون اصول اخبر هنگی یا آقای مرشی هنگی ان اگر داشت برای نداشت نده بیدیم تو نیست این رو میشه انجام داد اگر کسی بخار... ما نمیتونیم با این روایت فهره ازبه با روایت نمیتونیم الان رجال بنیمیسیم اضافه هم بنیمیسیم الان ما رجالی بنیمیسیم که نه آهای خویی نمیشه نه بردسی شد رجال روشن شد نقطه رجال چون رجال نه ما سنیان این کاری کردن اصلا سنیان کارشون همینه شیخ هم کارش همینه فهم رو کنه تصادفا من در بحث شیخ اوزید دادم رجال شیخ رو که من رو نگاه میکنم عقیده خودم رو میگم یک مقدارش از مسادر قبلی گرفته مثل رجال برقی یا کشی یه مقدارش خودش استخراج کرده خودش شیخ استخراج کرده اون چی با آقوی استخراج کرده بیشتر اون قسمت باب من لریره استخراجات شیخه فرار نفران رواهن و فرار وقتی برمیگردیم اون رو باید این در کافی هسته در خود تجوی استفسان استخراجات شیخه آره هم ایده استخراج کنم در کتاب سابقه نیامده شما الان ایده استناد نگذا رو خویده آورید. روایت به شما هست که روایت نگاه بکنی در هر مثلی باشه. کتاب زیدی باشه، کتاب فارسی بخار... جز خوارج باشه، نواصب باشه. یه روایت نه اینکه در تنش زراره هنی که یکی از علمای اهل سنت شما اون رو میاری زراره هم فلان در این کتاب. نمیخواد دیگه خود چت حسیلن. روایتی داریم زراره از این آقا شما الان از کتب روایات میتونید رجالش استخراج بکنید و لازمه ممکن اصلا هی نسخ جدید پیدا بکنید چیز تازه پیدا بکنید روایت تازه پیدا کنید هی رجال تازه بریزی اما اجازات رو از اونها نمیتونید شهرت از اونها نمیتونید برسونید شهرت فقط تبع اجازه است یه اجازه ازای مرجع باشه ایشون داره در این برنامه هندی شما میتونید کتب علامه هندی رو اجازه ایشون نقل اما توی اجازه شده اصلا که باید نرفته شما که باید نمیتونه همون مقداری یعنی فهارث اصحاب ما همین کار که نجاشی کرده همین کار روی شکل دردن اصحاب ما یا باید مبدعش اجازه باشی یا فهرست باشه. یکی از این دو. تا. حالا اونا هم ارزیابی باید بشه ارضیابی خاص باشه دا دا خب الان اگر است خب کتاب فهرست شیخ مفید مقابل جو هست اداره بحث کنید ما چیکارش بکنن نجاشی گاهی اوقات اسم نفر میاد فلانی و فلانی ساکته که من احتمال بده مخاطب چیزی بنویسه باز زیاد یا فلانم و فلان لهو کتابون همین مقدار چیزی میگه مدل تو غیری تئوری میگه کامل نداره واضح ما شاء الله گفتن از حضور قدنا برای اصول تذلیل خیلی کمه و فلان لهو کتابون اصلا نمیجماع ده ما ابو المفضله چیزی که ما اصلا بدیدین علاش شاید حدود 150 مورد رو ایشون از این اسماء حدود 900 تا 1000 تا اسمه تو این حدود 1000 تا احسان و, و کم تر حدود 150 هاشت از فهرست ابن بوته است. فلان و فلان لحو کتا اخبر می جمعه تا ابل مخزن ابن بوته که اصلا اعجازه ابن بوته فهرست ابن بوته نتراک خیلی مشکل داره. نجاشی میگه فی فهرست ماربا قلطان کسی حالا دارن نجاشی احترام کرده ده قلطان تسی اصلا در بوداغونه بیشت قلطان کسی این کتاب اصلا در بوداغون نخست نبوده نه مریون نه نه چون تو فهرست آمد اول دو دو کردم عزیزم من چه چون اینا فهرست و اذهار فهرست ابن قوله پیشش بوده فهرست ابن پیشش بوده فهرست مروصعدوق پیشش بوده فهرست ابن בלי از هم نمیشه مثلا در به ابن عقده اجازه ابن عقده پیشش بوده اجازه ابن با به استادش حالا شما می دونم از زاد... یعنی هدف این یعنی عدم حجیت و عدم حجت با ذکر سند. که مخاطب بگه اینه راه من اینه. از فهرست حمید از فهرست بعضی مثلا ما فهرستی که در نظر مرحوم شیخ و مرحوم بهسا نجاشی بوده، اصلا تحتی زیادی معینش کردین. بعضی‌هاش اجازه بعضی مش فارسی بعض یک تریامده اینکه شورای تفکیکی بشه تنظیم بشه خیلی خوبه شورای این طرح اجرا شود در خیر نتیجه شد این شاء الله تعالی الان من توضیح راجع این جلسه میخوام بده این راجع به البته که هم بزرگان بحث خالص مقاله بود اما یک کمی از بحث خالص حالا در هم بازگردیم به کارهایی که شده از کردیم که مرحوم میرداماد و مرحوم خاجویی و بر مرحوم سید سنت سید بزرگوار مرحوم شختی که این آقا تقریبا مضم کلمات اینا رو جمع کرد میرد آماد عبارتی رو از بله از مسئله ازریه مرحوم چیز نور کرده از مرحوم به اصطلاح از مرحوم محقه از من دحث پیروز از کرم مسئله ازریه نسخه خطیش هم نیست تو بعد از کتب دیده بودم اینجا در این هاشیه اشاره کرده چهار تازه چاپ شده این نیم در حال چاپ شده من شب ایشون این که تحریر کتاب کرده اشاره که صفحه خونا احتمالاً تا یه نسخه پیدا شده چاصوله سالغی که نسخه ازش من ناییده بود یعنی مراجعه کردن نشه نسخه ازش نداریم و عبارت مسائل ازیرم هم خوندیم معلومه حاجی نوری بود و این عبارت مشعر همون مطلبی است که ارسلنده در کتاب خوده متاسفانه نیامده اون عبارت اینه که ا میگه امامیه و و من, من یعنی عبارت مرحوم خب محقق و بال شیخنا ابو جعفر فی مواز کتبه خب میگه از حث محقق و بزرگواری محقق بالاتر از اینکه که باشه با نگاه بیشینش فال از عبارت شیخ و بعد ابوردن روایات این مطلب رو استظهار برمی داره چی چه اصلا تو شیخ نیست که تو چی بگه موازه امن کتبه احتمالا من نمیدونم تو شده من نمیخوام به تعبیری که حالا قال شیخ ابو جعدی مواضع ابن کتبه نیست چه در کتبه شه که ان میخونیم بعد در کتاب معتبر قال ان شیخ ادعاء اجماع الامامیه از امامیه اصرادم کلمه اجماع رو به کار نوشته شه زیرا ولهاغه امرت طائفه این رو ترجمه کردن به اجماع امامیه. اما لعمل برایت هم ما و من قول دادیم، دلیل؟ املت با اجماعی بودن. اعتبار... اتباع... اتباع... اجماع یه تفاوت کلی. اما شرط تفاوت اجماعی نیست. داره اجماع امامیه. اما لعمل برایت هم ما و من مثال اهمی من, من عدد دارم. این تاریخش خوبه. تا اینجاش خوبه. راسته. این رو در کتاب او داره که کسانی که مخالف ما در مذهبان مثل اممار و فلان چون سقاط هم اما این داره این تو اممار داره دقت میکنی توی اممار رو چند نفر دیگه اسم برده که میخونیم سماه اینا اسم برده میگه سقات من من هم و من همو سکونی سکونی رو اسم نبرده سکونی رو اسم نبرده من اینشالا توضیحش الان از کردم سابقا بازم اجمالا ارزم دارم بعد میخونم چون نخواد فنمی هم داره عبارم شیخ تو بحث تا آروز اسم سکونی رو برده اما نگفته لعنه بود سقط نوشته اگر اینها که مخالف هم روایتی نر بکنن که از خواب ما مخالفش نداشته باشن قول مخالفش هم نباشه اینها عمل میکنی ای شیخ اینه نه لعنه هم سقط بعدم ظاهر عبارتش اینه لما رویه انصادق علیه السلام علتش این میاره که امام صادق فرمود اگر مطلب پیشنهاد که روایات ما نبود نگاه کن به ما یربونه و انعلیه اگر کن سطحونی انعلیه نهجفن آبای انعلیه فعملو به ظاهر عبارتش اینه این ظاهر از کنم مگر مرحوم محقق گفته از این سر است. این یک جا که من میخونم نص کامل عباتش ان بعد از چند صفحه زیاد نیست تو بحث حجیت خبر تو بحث تهاوجی بود ها تو بحث حجیت خبر بعد در اونجا میگه کسی که بابا مخالف از در اعتقاد مثل پولار عمار اینها اگر سقاط باشن اما اینجا سقاط گفته سقاطت اینجا گفته اگر سقاط باشن عمل میکنید ولو مخالف در اعتقادن و لذا تارفه به این عمل کرده توی اینجا که عنوان سقان داره اسم سکونی اینجا نیامده حالا چون فاصلش کمه دو سه صفحه است چهار صفحه اشتباه کرده محققی این دوستان رو با هم دیگه با چند چی چون مخواد اون جایی که اسم سکونی آمده تو بحث تعارضه، لفظ سقم اونجا نیست اونجایی که اسم اممار آمده تو بحثیت خبر واحده نه تو آرز اشتباه نشید. بحث اول شد اما خیلی نزدی کرده اونجا اسم اممار رو ادهی از فتحیه و واقفیه ورده نمشته لعنه هم سقاط اونجا توسیق زده اونجایی که لفظ سقاط داره اسم سکونی نیست این حالا این اینی که ما نمیدونیم واقعا آیا محقق این دوتا عبارت جا به جا دیده یا چون در اینجا دیده اینا از اون جا میدونی اونا مثلا دوتا مخالفی عمل میشه امام فرمونده استظهار کرده که ایشون هم سقه هست بیدین عبارت محقق رو بخونم این نشه ادعا فلعده اجموع الامامی در عبارت امام و من ماسلمو ماسلمو یعنی مثل او در مذاهب فاصله من من همون راسته چند نفر اسم برده که می کنیم و من هم سکونی این من هم سکونی را نه چرا روشایی بسند تو کجا توی عدده شیخ اینجا نیست اسم سکونی راسته تو انوار گفتسته قبول درم اونجا تعدیره به سقه کرده اما اسم سکونی این یکی از این دو احتمال باد باشه یا اشتباه شده بین این دو سطح فاصله رو, رو جا گرفته یا از عبارت شیخ در سکونی به قرنه این, این عبارت همینه فهمیده اون که فهمیده همینه یعنی اشون است این هم بسیل معتبر ولی ذالک مرهوم این عبارت مرهوم میرداماده تراح و فل معتبر کسی ما یحتکی و به روایت سکونی معتبالوغیی فتحنه فر روایات به زهر حالا من تبالغ که ندیدن اون زهرشون و یدول و علاقبول خبر العدل واحد حالا میر داماد استدلال اصولیشون هم نگاه دهتن و یدول و علاقبول خبر العدل واحد امکان امکان آمیه این کلمه عرض رو در اینجایشون منه سقه شاید چاب بد شده باید یه سقه واحد نه عدل واحد شاید که آمی باشه که ادارتی چهازه حتی صحیح ح انصادقه علیه السلام این همون روحات محروبی است که آره خودشتان از کردن وحدت افق به شرط نمیدونن فی منلم یه سم یوم سلاتین من شعبان سم مقامت شهادت و علا رویت الهلان روایت این نیست لا تغذیهی الا ان یسبت شاهدان عدلان من جمعی اهل سلام حالا این چه رفتی داره به روایت سقه وجه و دلاله ان شهادت عدلی فی باب شهاده تو در باب شهادت ما را در باب شهادت موضوعات خارجی موضوعات خارجی میام باب شهادت مثلا این نجس هست نیست این که فلانی هست نیست هلال دیده شده نه اینا موضوعات خارجی که اخبار عدل واحدی باب روایت اصطلاحا هم باب روایت باب احکامه یعنی ما در باب احکام عدل واحد قبول می‌کنیم در موضوعات خارجی عدلین در موضوع خارجی عدل واحد قبول نمیشه الا موارد خاصه ال ماصناب یک اینشاال الله تعالی. یعنی شهادت در باب موضوعات مثل روایت در باب احکام فداکان از شهادت و دل من جمعی اهل خللات معتبرتم فکالت تکون و روایت و ل واحد معتبرن من هم جمعه واحد واحدم در احکام معتبر میشه اگر عادل باشه اگر سله باشه ع خب نمیساده با اون مطلیکی و به جمله، لم یبلغنی مرحوم میردامات من اعمت توصیر و توهین فر رجال رمی و سکونی به زهر خیلی عجیب از ایشان ادهی از بزرگان که دیگه ما بعد از علامه همه نکنید روید سکونی مثل فرسیم مثل جامعه مثل مداره که مثل مرحوم آلم یه اله ماشالله مرحوم اردبیلی اشارت داره خود شیدستانی که رو ضعیف است چون آمی و تعجب لم یبلغنی وقت نقلو اجماع الامامیه از این اجماع رو ناقل اصلیش مرحوم محققه که از عبارت عده گرفته که در عبارت عده موجود نداره الان تصدیقی و الان سغطی و الان عمل بروایتی فعظم مرمیات و لیسد زعاف هم من الموسطقات المعمول به و تعمفی ها به زعف من جرس تمخل و خصول تبطق تتبق اگر کسی دیگه این رواز زعیفه چون مهارت نداره ضعف تمهور به عبارت جمع جو فرنده و قصور تتبع چون تتبعش خاصه خب اینا خیلی چیز دیگه به اصطلاح بله شرف شو با کردن دیگه اشغال نمی ما شما قصور تتبع دارید الا عبارت فضل تا این مطلب در نمیاره بعد ایشون فهمیدن به که به انما نقلناه به طول الی اخر که این کلام میره داماد من کل کلام رو خوندم که نحوه استدلال و برخورد آیومی بعد قال المحقق و طبیعی در روزت المتقی کلامیشون رو هم گورده که شرق فقیه زکر از شیخ فلعوده هجمعت طاقه علاد عمله به روایت سکونی هر صدر این عبارت شیخ بازم این نیست که ایشان رو عمل عمله به روایت سکونی به دو تا یک روایت مخالف نداشت روشه چیه دو قول مخالف نداشت روشه مطلق نیست که ایشان رو برده. و وثقه المحقق في المعتبر تخون ديوازش و که كعنهول قول شجاع راست و حكم الكليني و صدوق به صحت الخبر کلیمی چون کلی در دیباچه گفته که آثار با آثار صحیح اهل بیت این کلمه سی در دیباچه رو گرفتن برای تصحیح روایات نه فقط تضییح از روایات یه دفعه انسان از این عبارتیشون در که روایات کافی معتبره. ایشون اضافه برمون در آوردن که هر شخصی در سند کافی باشه، اون هم سه غرست استدلال مرحوم مجلسی و صدوق خب صدوق از صدوق نسبت به کلیمی که کمتر عمل کرده به روایات صدوق خیلی کمتر انصافت عمل صدوق کمتره و لکن مشکل کاری که ایشون داره مرحوم مجلسی که شعن ایشون هم عجزه صدوق تو میراث مجوسی هم دیگه لا گفتی به از سکونی شکونی انخراط رو من به شک پا اینکه نظر ایشون ببینیم باشه که خیلی جای در کتاب صدوق انخراط هم هست و ما ازلک خطا داره یه نکته رو در اینجا بگم چون این نکته رو نشینم الا از مرحوم استاد اونای حائری مرحوم هاشمزه حائری به ایشون از مرحوم پدرشون باشه صدوق کل در چون مبانی رجالی و حدیثی کم داشتن در موارد این رو هم از ایشون دیدم از شاگردی دیگه ایشون جای دیگ هم نداره تو این تغییراتی که حالا من دیدم از ایشون این مطلب را داشت که نمی‌دونم چون این اشقال معروفه که بر اون گفته و روایت من معتبره اما خب می‌بینیم در کتاب گاهی روایات وجود داره که معتبر نیستن یا مرسلن یا بعضی سندش ضعیف از وجود داره مرحوم آشادو کریم مرحوم آیه از قال پدرشون نقل کرده که من تطبع کردم، مرحوم دستدار مرحوم حائلی بزرگ مرحوم آشادو درست صدوق گاهی روایات ضعیف میادن اما در بابی رو که نگاه کردیم در مجموع اون باب روات صحیح هست تو اون باب ممکن دو ضعیف هم باشه لذا مراد ایشان از این که جمعی اربایات صحیحه یعنی مجموعه باب صحیحه مجموع نه اینکه کل واحد واحد بنرمونه ای حالا این عبارت مرحوم مغنیسی میخواد کل واحد واحد بنرمونه میگه اینا من چون اجازه هایش اینا چنین نیدم نقلش گفتن ازتون بس چون سماعی نقطه لطیفی اگر واقعا مرحوم هاشم موده بوجه چون آشمونس گفت خیلی واقعا در باعث بصارت ال ادارهت و جلاده هستن قدس الله السلام و علیکم ایشون فرمودن البته چون خیلی من معتقد نبودم اینا اون تتبع کرده باشم حالا من به همین مناسبت اینجا مزدیک بکنم اگر برعکس ایشون تتبعی فرمایند و دیدن ما این با واقع نمی سازه من در بعض از ابواب صدوق دیدم آقای با این کامپیوتر ما نمی‌تونم الان تو ذهنم نیست کجاست بعضی از ابواب صدوق که باب از عنوان با باب تو اون باب با فقط گرهات واحد داره اون رازه سختونیه توی باب فقط ربایت واحد است. و این با عبارت خودشه که میگه لا اعمل لا افتیگومایی انسان به سکونی نمیسازه با تضعیف خود ایشان نمیسازه با تضعیف صدق نمیسازه و این من دیدم اگر در تردید مصدر مرحومان حالی مراجعش کردن ظاهرا تطبورشون کامل نمیده و ظاهر انه همه و جداه فی اصله در همین دست امروز هم آنگی که داشتن می دونستن که من عرض کردم که گاگی مرمون مجلسی میگه مثلا سهل ابن طریقه این عبارت مجلسی هم همون بحثه فهرسی که من میگم می گم بعد از آن دان اخواری ها اجمالا بحثای فهرسی زنده شد اما نخیلی مرتب و سر و سامان پیدا کرده و ظاهر انهاما وجده ها پیاسه یعنی شما اگر در سندی اسم سکونی رو دیدیم معامل خبر واحد نکنیم این کتاب سکونیه کتاب سکونی هم بارده اعتماد بوده پس ما او رو قبول میکنیم و اگر از این راه وارد شدیم اضافه بر اینکه که توصیق میکنیم سکونی رو نوفلی رو هم قبول میکنیم چون در کتاب سکونی نوفلی رو رس میشه دیگه نمیخواد پلوان این عبارتی ایشان مثل همون بحثه فهرستی ما هست و ظاهر یعنی و ه و جداهو فی اصله این مطلب است که ایشان پرنگه. اون این مطلب فی نفسه مطلب خوبیه یعنی این مطلب فی نفسه که ما احراز بکنیم از کتاب ایشانه یا روایات ایشان فرم این مطلب درست ما هم کلارن زر کرده الا اینکه اون چه که در اینجا در این ایشان هست یه اینکه ایشان کتاب سکونی را عرض گفته این درست نیست چون اعرض کردیم دو فهرست نگار بزرگ و مرحوم شیخ علامه نجفیشون گفته اصل این مطلب رو اولین بار مرحوم ابن ابی در قرن پنجم در قرن ششم گفته است الا موجوداتی عاقله اساس کتاب سکونه حسی نبات ابن ابی زرغمی که و اصل شرح ابن ابی در سر شناسی و کتاب شناسی فوق علاوه ضعیفه فوق علاوه قابل اعتماد نیست پس این مطلب که فی این درست نیست چون این در عبارات قبلی ما نیامده یک دو ایشون واسه هر میذارن اصل مطلبش خوبه سهر میذارن بین اونجایی که از کتاب سنتونه اونجایی که از روایات سنتونه یعنی دقت کنید چی میخوام بگم نکته مرات مختلفه به پراکته آنی که اما اینکه بحثی کردن همه رو از روایاتش گرفتن ایشون کاملا بحث فهرستی بکنه همه رو از گرفته از کتابش گرفته ما آمدیم گفتیم فرم بگذاریم اونجایی که نویشه فضاله انسکونی این روایاته اونجایی که میگه نوفلی انسکونی یعنی برگردیم با شواهد حواییم که کشکیم توبه میکنیم. برگردیم با شواهد خارجی روایات سکونی رو نه مثل اونی که متعارف همه شو روایت گرفتن نه مثل ایشون که هنرم هم کتاب گرفته عصب گرفته تفکیق خواهد ب بعضیاش سا... لاعقل پیش ما به واقع کار نداریم پیش ما ثابته که از کتاب سکونیه تجمیع شواهد کردیم هر جای که نوفلی یعنی یا انستکونی کتاب سکونیه اما مثلا ما داریم عبدالله این مغیره انستکونیه من چهالا اعتقادم نمید که این کتاب سکونیه حالا برگشته اعتقادم این کتاب نوفل... عبدالله این مغیره است من از کتاب سکونی باشم سهارشی که اگر کتاب شد به اندهای اجماع به کتاب شد کتاب میشه؟ <متحد> نه اون روازات مفرده و تک تک روایات این مسئله روایت چی دیگر میشه اعتماد رو کتاب میشه و اگر معلوم شد که کتاب مشهوره و شهرت داشته رسوق ما به مطلب بیشتر میشه بیزن تلکیسه کارسی نزید <متحد> صلی اللہ به نوعات حفاغ چون این بحثا در